هران سری که داری با دوست در میان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد، و هر گزندی که توانی به دشمن مرسند، که باشد که وقتی دوست شود. به دوست گرچه عزیز است، راز دل و شای، که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز، رازی که نهان خواهی با کس در میان من و گرچه دوست مخلص باشد که مران دوست را نیز دوستان مخلص باشند همچنین مسلسل خاموشی به که ضمیر دلخیش با کسی گفتن و گفتن که مگوئ ای سلیم آب ز سرچشمه ببند که چو پر شد نتوان بستن جوی، سخنی در نهان نباید گفت که بر انجمن نشاید گفت.